بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد ما بحث استثابات و بحث آداب خلاب دعشبي و شوالد صلى الله عليه وسلم درج من رغض كادم و حديث انك عنات بن مالك ببيانت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنقامك بأولد دعشبي من شلم يقولون شيء اللهم إني أعوذ بك من الخوف ول خباید درسته یا من الخب و دین ول خباید خب بله؟ بله خب این مسائلی که ما داشتیم در دلسلی قبلی پیرامون این حدیث صحبت کردیم و فراتر از این حدیث مسائلی یا گفتیم بیان شد الان از بحث ذکر خارج شدن و بحث نمی دونم اذکار یا کتی عکس داد اجازه داره که مثلا به فرض الحمدلله بگوید یا نه یک مسئله هم داریم که دوستان تحقیق بکنند و اونم بحث این که ما میگیم که مثلا خیلی ها میبینیم این رو به کار میبرند سنت هست دقیقه بارد دستشوی میشید و پای چه هست آیا این کلمه درسته که ما به کار ببریم که سنت مستحبه یا نه تحقیق به کجا رسید چیز دام Dary 특히 آمرا seeing Commonsuren کار انداری مقرد حدیثی داریم آدраш که وقت مو حدیث بودن کنه واجب بود یعنی و حکم خودش نمی خب الان سنت خاصی نیست مبحث سنّت است بحث واجب بودن نیست وقتی اینکه سنّتی که باید پای شهر پیدا یا نه وقتی بسلط استراش ما قوی را آغاز بکنن و طرف راست آغاز بکنن چرا شونه کردن چه نمیدونم وزه گرفتن دلیل چی دلیلی دارید دلیل بر اینکه دستی میخواد در وارد مسج شدن در وارد مسج شدن دلیل که پای رات بشه با پای, پای چپ بیرون بیای در روی دارین پای راست پای با پای چپ اول بیرون بیارین حالیتم در بخاری بوده لیکن الان دستی رفتن آیا دلیل هست رسول رفتن یا فرمودن که با پای چپ بشینن دلیل نداری فقیدری این لب نداره میشه به حالا چیز دلیل علم کردن برای این مسئله؟ چیزی که علم ها کردن، امام ابن قاسم ذکر میکنه در حاشیانش دیگه که چی؟ علم اجماع دارن که مستحبه، علم اجماع دارن، مستحبه که به هنگام وارد شده می دستشی با پای چپ آغاز بشه. هم دارن این در کتاب روز ابن قاسم نقمی میکنه که در بر تفیصه دیت و حالا این اجماع هست که نقم میشه حالا هرچن که حکم مستحب دادنش یکم حالا سخت هست لیکن حالا اجماع یک از عدله هست ای که یک از عدله شرعی هست که میشه حالا لیکن ولو این این اجماع از کجا برگرفته شده آیا دلیل حد از صحابه؟ باید نیاز به تحقیق داره که ما باید نگاه مصنف عبدالرزاق ایو احسر یا صحابیم میبینی این مسئله مثل بحث بحثم و کلان بجدن هنگوی بدایشید ایو دلیل یا صحابی هنسانی این یون دل داره لیکن علماء استدار کلم به حدیثی که در ندر اموم احمد هست و در ابو داود حدیث سماریسی و چار که رسول الله صلی الله علیه و سلم کاند ید رسول الله صلی اللہ علیه و طعامه که دست راس رسول برایب تهارتش بس برای یعنی گرفتن و دست و همیشه برای غذا خوردن، و کانت اليوصفا لخلافی و مکان فی اذا برخلاف اونها این برخلاف غذا فردن و تهارت دست چپش برای پاکردن عذیتو نمیزم نجاستاته لیکه حدیث موقتر نمیشه بشه استثنان کرد حدیث ضعیف و موقتر در مصدر احمد با, با سناد موقتر اومده پس نمیشه بهش استثنان کرد خب. حالا تنها بحث وارد شدن به دست چیه نیست پای چپ در نمیدنم گفتیم در متواق زدن اگر مثلا به فرص اگر قصد تمیزی با به چپ باشه همونطور که نجاست پاک میشه کل پاک کردن مثلا یه چیزی کسیفه یه چیزی که ناپاکه کل این مسائل را خیال بر چی بر استنجا یک مقیقه قیاس هم می کند همانطور که مثلا فرد انسان نجاست خودش رو با دست پاک آغاز می کنه سنجار رو با دست پاک آغاز میکنه و و حق نداره دست استفاده اتفاده بکنه همانطور هم نجاستی که روی رو زمین ریخته یا مثلا به فرد دهانش رو پاک بکنه همه اینها قیاس بر بینی بینیش با بی را بازم با دست چپ، آنها همون قیاس برد، آنها خب این خلاصه بحث مثاله به که ما بهش قبلن اشاره کردیم در امتصاد بحث قبلی این که نال مباحث جدیدی داریم در زمین حدیث ابو ایوب انساری خب حدیث بخون عزیز ایوب انساری رضی الله عنه. قاد رسول الله الله علیه و سلم از نقصه از برقاید قلید تسلق برقاید و یا برقاید ولا تسدروها ولكن شردو او اضربوا حيث بجانبه انا محمد بن عمر بن خطاره رضي الله عنه قال ركب يوم على بيت بيت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته متقبلا الشمس متظهرا الكعبه في الرواية بتافلا البيت المقدس فف عن ابي ايوب ابو ایوب انساری خودش میگه که در بحث همین حدیثش میگه که ما از شام اومدیم و دیدیم که دستشویه هاشون به طرف قبله ساخته شده خودشالا این تسمتالا که عالم ها اضافی میکنه در امتدا نمیدونم پس میشه شما یا نه میگه قال ابو ایوب فقدم در هست خب می قالای فقطم نشستم و وجدنا مراحيب قد بنيت نحو الكعبه فننحرف عنها ولاستغفر الله عز وجل میگه ما میگه که حالا در دنباله همین حدیث میگه که ما از شام اومدیم دیدیم که دستگیری های رو به کعبه ساخته شده میگه ما خودمون رو میترخوندیم یعنی اینکه میترخوندیم که رو به قبله نشد بعد بعد از هر جای حیات استغفار می کردیم بعد از هر حجه استغفر منك خب خود حدیث هم به در بحث آداب خلاق و مصنف صاحب کتاب مرمدت الاحکام این حدیث ها در بحث دنباله بحث آداب قضای حاجت میاره بحث غائب که یا همون خلاق که ما گفتیم در در سولمون چون علما در بحث آداب خضای حاجت الفاظ مختلفی کار میبرند گفتیم باب خضای خاجت آداب خلا آداب استثابت همون که مصنف برده یکی از الفاظی که بفار بردن بحث غایته آداب غایت کلمه غایت از این حدیث گرفته شده اذا عطایتوم الغایت اذا عطایتوم الغایت غایت یعنی چی؟ غایت یعنی چی کلمه غائط جایی از زمین است از زمین هست که برای قضای حاجت مخصص شده یک جایی از صحرا مخصص شده که چهار دیواری ساختهن مثلا به کسی میخواد قضای حاجت حاجتش انجام بده بره اونجا پس از باب کنایه اون جایگاه اون جایگاه مخصوص از باب کنایه برای قضای حاجت در نجاست استفاده شده نگاه بکنید خود عرب و غیر از عرب کلا در صحابه یه چیزی دینام میشه. افت کلام افت کلام ما نا بکنید. ما در جمله به جمله باید از این احادیث احکامی سنبات بکنیم. صحابه ما نبا در بحث این مباحثی که ما داریم. کلماتی به کار میبرن که از باب کنایه آخرش منتحی میشه بشید به همون قضایی حاجت دوست ندارن که یک لبزی به کار ببرن که نفت اون رو نمی دران، <تصفيق> ادران یا مثلا این کلمات رو به کار نمی کسی از شما نفت نب... به جای قائد جای... جای... جایگاه خاصی قائد غوت یک جایگاه خاصی پرد یک جایگاهی کسی دستش بهش نمیرسه جایگاه دور آره ما بکنید این لفظ رو به کار بردن برای چی؟ برای انجام دادان دل فردالله اون فعل قضای حاجت این از آدام این هست که ما از این حادث استفاده می کنیم جملات دیگری کلمات دیگری هم به کار برده شده مثل کلمه مرحا یا مراحیب که از شستن و از پاکی میاد. آد بازم کنایه هرز از همین آداب خلا و قضای حاجت حکمی کرد این حدیث استفاده میشه شود دوومن حالا این بود در شرح کلمه مشکلی که در این حدیث دو بار تکرار شده کلمه غایت دو بار تکرار شده در این حدیث دو این مبحثی که هست این که رسول الله صلی الله علیه و زمچینی فرمودن هرگاه به غایت اومدید غائض بسید جایگاه جای خاص داره ای قضای حاجه فلا تستقبلو القبله تشروب قبله نکنید به غائضن نبا کنید؟ لب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چقدر دقیقه در استفاده در فر فلا تستقبلو القبلته به غائض غائض اومدید غائض جایگاه بود برای دفع اون نجاستتون بعدم از چی بکار بود؟ از همون کلمی جایی فلا تستقبلوا القبلت به غایت یعنی وقتی قضایی خواجتون ان بخوای انجام میده در اون رو به قبله نکنی ولا بولا، پس غایت به چه کنه یعنی همچی هست؟ حالا بعضی ها دوتا لبز همین قضایی بزرگ و کیوچه ادرار رو سوچیک اتفاده می و بزرگش رو همون از خیلی دوست نداریم که بگیم اما یک الفاظی هست یعنی انسان همین کنایه استفاده بکنید نا کنید لغت حرمیه دلزتش در همینه که انسان راحته میتونه حرفشو حرفش رو بزنه حرفش رو بفهمونه با کنایه با یک لفظ از پشت بشرقی یک لفظی بکار میبره که هم مفهومش ناخته بشه خوب، پس از این حدیث، این چنین نتیجه بات میشه کرو به قبل کردن، سرو به قبل کردن برای دفع نجاتش حرامه. حرام در این چون رسول الله طبعا تو ماند در قرآن میفعل يحذر اللذين يخالفون عن امره فليحذر اللذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنه، او يصيبهم عذاب. علی بر حذر باشید اونهایی که از امر رسول الله سرپیچی میکنن دو تا راه فتنه در دنیا یا دو تا فتنه بشن یا دو عذاب ها در آخرت در دنیا بر حذر باشید سرپیچی نکنید امر رسول الله به یک چیز واجبه دستور ده. امر به انجام ندادن یک چیزیه نهی حرامه الان رسول خدا امر میکنن که اون کار رو انجام ندید رفت دیده میخوای میخوایی خواهی خواهی رو بکنی؟ نبادر رو بقبله بکنی؟ باید برحذر باشه؟ پس میشه حرام. خب، حالا میاد احکام کلیش، حکم فقیش، علمان چه اختلافی دارند در این منزله. لازم چینی نیمیده؟ اومدید برای خواهی خواهید میخواهید دفعه ازیتت تکیه بکنی، دفعه قضای خواجه تکیه بکنی، آنها چه رو چه چیدر مدفوش نه رو به قبله بکن، و نر دفتت نپوش روحه به قبله بکن لیکن چه یا به طرف شرق، یا به طرف غرب خب الان پیش خودمون، وقتی که میخوایم قضای حاجت تکیه بکنی خب به قبلمون مون کدوم بره؟ قبلا مون به طرف غربه کهdemo به طرف غرب رسول الله میگه که شرق یا غرب و طرف شرق و طرف غرب دیوارو بین ما اگه اینو به قبل نکنیم خب میشه شمال یا جنوب رسول الله که نه یا به طرف شرق یا به طرف غرب یا خودمون بخوام انجام بدیم یا به طرف شمال یا به طرف جنوب حالا خودمون یکم میگیریم گفت چه طرف کعبه نواحی طرف خودت بعد آخرش گفت یا طرف شرق باش یا طرف رو به تابلو کلن نکنید، دیگه مترف شرق یا غرب. رو به طرف شرق غربی نه. رو طرف شرق یا غرب. حالا این چه کار بکنیم؟ حالا خود بیایید بگید، پیش خودمون شرق رو میگیری، اگر شرق رو بگیری میشه رو بتاپ. اگر غرب رو بگیری میشه پشت به کعبه. چیکار بکنیم؟ شمال چرا به نسبت نه این قضیه رسول الله صلی الله علیه و این قبیله رسول به نسبت به مدینه بیان میکنن در مدینه در مدینه شمال کجاست قبله وقتی گفتن شرق یعنی بر خلاف و رو به کعبه نیست. جنبه خودمو قرار میگیره. نه کافی نبود. خب حالا که مثلا برفا گفته رو به کعبه نروید. خب صحابه علا این اتفاق پیش میاد. خب چه کار بکنید؟ یعنی حالا چطور میشه کن زاویه خودمون رو مثلا بچرخونید اگر یکم باشه، چقدر باشه؟ ولی که دست شبهه بشه، مشکل حل بشه. چیکار میگید حرم میتونید دلت رو راحت بشه حالا رو کعبه نمیخواید باشه چون کعبه چیز دقیق قطبی نیست چگار بکنید رو به شرق و غرب بکنید خصوصا شرق و غرب شناخته شده هست راحت میتونید بفهمید چون شمالو فهمیدید خصوصا با با دو اکبر با ستاره شناسی شمالو فهمیدید خود به خود شرق و غربم میتونید تشخیص بدید احکام ترتیش در بین علما علما چه شک میدارن اولا روایتی از احمد و سوری چی نیم که چه در سحرا چه در فضای بال و چه در خانه در دشجی که در خانه چارد، چارد، چوب و چار دیواری داره کلن حرامه کلن حرامه درست است چون بله روایتی از احمد و امام سوری کلن حرامه چون است به قبره بحت کلمه محترم باشه و با احادیثی که اومده مثلا حدیث بعدی که شما خوندید میگن که این احادیث احادیث خاصه رسول الله صلی الله علیه و و رسول این کار رو خودش انجام داده و این احکام خاص خودش قول بعدی این که حالا بعد آخر رو ترجیح میدین قول بعدی این که منسوخ شده یعنی این حکم منسوخ شده بدون دلیل مسئله کردن بر جایز بودنش در صحرا و در خانه نداره ندارم به بدون دلیل اینم مذهب امام داوود ظاهری امام داوود ظاهری و ابن حل و دلیلشون اینه یکی حدیث بعدی حدیث بعدی ولی خب دلالتی بر نص درش نیست عبد الله میگه رفتم برای خونه که رسول الله صلی الله به کعبه داره قضیه های انجام میده درسته ولی خب دلیل نیست کلام قبل از اینه یا بعد از لیکن حدیث جابر در نمز ترمذی فریشتر از این که میگه نهانه رسول الله, رس و الله صلی اللہ علیہ وسلم نستد من القبل داو نستد براها به بودن تم مرأیتون قبل ان یقبضا بعام یستقبلها رسول الله ما هم چه پشت دادن و چه رو بود قبل برای قضای حاجت لیکن قبل از اینکه یک سال پود و جشت دیدم که رسول الله صلی الله علیه و وسلم رو به کعبه کعبه درن قضای خاجه سوش انجام بده پس دو تا از داریم این تاریخ مشخص میکنه یک تا قبل از وفادش و منعش قبل از این حادثه بوده خاطر همین گفتن پس منسوخ واقع شده شکم قبلی رده ما بعد شکم دلید رو بگیریم چون رسولا رو به کعبه کردن دیگه اشکالی نداره مذب استقوم اینه که جایز نیست نه رو به کعبه جا کعبه جایز نیست، لیکن پشت به کعبه جایزه. رو به کعبه جایزه، لیکن پشت به کعبه جایزه. بحث رو به کعبه جایز نیست، ولی پشت به کعبه جایزه. این مذهب امام باخیه است، روایت اندر مذهب جمهور چیه؟ مالک و شافعی و روایت از احمد که در صحرا حرامه، و ولی هم همین. در صحرا حرامه. فضای باز حرامه. که رو به تجربه رو تکلیفله یا خوش به کعبه یا خوش به کعبه قضاای حایه انجام میدید لیکن در, در, در ساختمان یا در خانه در دلشی که چارچوب و چار دیواری داره مکروه و علما چه این استدلال میکنن یعنی که جمع بین دو تا دلیل مقدمه بر اینکه یک دلیل رو بگیرید دیگر دلیل‌ها رو رها بکنید خصوصا اینجا که رسول خودش انجام دونسته صلی الله علیه و سلام جابر رو میبینن در ملاعام که نبود البته قضایای حیات کجا انجام میده کجا انجام میده یلو چشم مردم خیر یک جایی انجام میده کسی رو نمیدونم و حدیث بعدم صریحه که من رفتم بالای خونه و دیدم که چی؟ این خونه یکی حصه خواهرش و دیدم که رسول الله در چارچوب خونه داره قضای رو انجام میده پس چی سمبل میکنه این سمبل میکنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر امر به یک چیزی بکنن باشه پس خودشون و از اون امرش اون فعر انجام اجام بدند دلیل بر اینه که اون نهی بر تحریم نیست نهی با فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم انتقال پیدا بیکنه از تحریمش بکراهت. کراحت بلیکن در کجا؟ ناکنه باید واقعیت خاص باشه نه اینکه ما عمومش بدیم همه جا حالا مثل مذهب ظاهری ها هر جایی که بود پوش به یارو یا رو به کابه جایزه؟ نه. اون جایی که رسول الله انجام دادن جایی خواستید. حالا چه حدیث جابر هر جایی که در حدیث جابر نیست در بونیان خارج می‌کنه. لیکن واضحه که انسان قادر حیاتش به مردم انجام نمیده. بلکه در جایگاه خاصی انجام میده. و عبدالله بن اماره میگه رفتم براي دیوان دیدم که رسول الله این چیزی از انجام میده. پس ما این چیزی میکنیم که در فضای باز حرامه که در فضای بازه مکروه کراحت داره كراحت داره لیکن الان مسئله هست که اینجا مطرح میشه آیا رسول بخصد الله علیه و تنه فعلا مکروه فکری کاری که خوب نباشه یا یعنی مثلا فرد، مکروه کاری که انجام ندیه بهتره یک کار خوبی رسول رو بخواه میکنند نبه بکنید بحث بحث اینه که چی؟ ساختمان ساخته شده و اون جایگاه ساخته شده نمیتونی مثلا جاهایی هست مجبوری هستن در ساخت بعد ساختمان ها میرید به سفری جایی دیگه این مثلا یعنی بد نیست که مثلا به نه, نه, نه, نه رسول الله نه کرده و فلان دیگه نباید اصلا فلان بکنیم و فلان بکنید نه رسول الله خودش با این وجود که رو پوش رو به کعبه ساده بوده با این وجود چون اون جایگاه اونطوری ساخته شده رسال الله ساتونه اونجا قضایی خواهیات خودشون انجام دادن پس به دلت نیاد چون بحث اینه که شید بحث اینه که تو طوری بریشید که نجس نشید دفعه اون کراهت دفعه اون به طوری که برخورد به جسمت نکنه یا عذیت نشید بود زن همه های فرنگی که هست یکمین خودتو چرخودی شد برخورد بکنه به بدنتو به پیراهنه این مثال با در نظر گرفته حالا حدیث کاملش تعریف می کنم حدیث کاملش تعریف نمی کنم حدیث حدیث اولی متمن نشد ابویو میگه که ما رفتیم به شام و دیدیم که تصریح هاشون به طرف کعبه یا قبله ساخته شده میگه که ما وقتی که در اون دژی وارد می شدیم خود خودمون منحرف می کردیم یکم که به خودمون چرف میدادیم یکم دیگه لازم نیست که نلمات در جهت چرف یکم خود چرف اگه بدلت میون بعد میته استفاء می کردیم حالا هرچه که سخفار میکردن این دلیل برای این نیست که کار حرامی انجام دادن که سخفار بفردن کار حرامی انجام ندادن کار حرامی انسان انسان سخفو بازه بود معمولاً در شیعه قدیمی سخفوش باشه بود نگوه بود معمولاً چیه اینه مراحیم ولی انسان اگر به فرد مثلاً کاری مکروی انجام داد خلاف اولاد از کارشو نگفت مثلاً بفرد که خوند نمازش ناقصه. اصلا سنتو قد از نماز استغفار بگید. لیکن حالا خود به خود یاد میوفته. خدا این نماز اونطوری که تو نبود. حالا هر ما طرفه از اون تراحت به حرامش میریم، اصلا فکرمون چه ابراد. خیلی ساده است. استغفار رو زیاد بگید. خلاصا در الگوینی نیست برای ما. در روز بیش از 100 بار استغفار و بعد از نماز بار تو هذا هو الديانة السخفر بقوله. خبرنا بحديث عبد عبدالله بن عمر رضي الله عنهما تبين قال رقيت رقيت أيس عبد بل رحتن رقيت رقية بل رحتن رقيت يوما بيت حصة رحتن برأيتني حفص روزي قهرش حفص بنت عمر فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته يقهر رأيته شنو حديثه رأيت في عليه راى رسول الله صلى صل الله عليه وسلم يقضي حاجته قضى حاجته انجام ميد مستقبل الشام مستدبر الكعبة رو بشام اpush بكعبه هم خب قالوا گفتين بعدا قلنا حديث الناصف قرار هذا گفتن که این حدیث ناسخ حدیث قبلیه همطور که مذهب ظاهری هست و بعضی ها گفتیم که جمع کرده بین دو تا حدیث و گفتن که چی؟ این در بنیانه و اون در فضای باز که اینم صحیحه گفتیم و بعضی ها گفتن که این عمل خواست رسول الله صلی الله علیه و سلم که خواست بودن رسول الله صلی الله علیه و نیاز به دلیل داره خب بعضی هم متوقف شدن بعضی ها متوقف شدن در این حدیث که ما دلیل بر توقف نمی‌بینیم. میمونونه مسائل فردی خارج از درد ما گفتیم جاهایی خارج از درد میریم برای مال بعد بعض از نبحت از فاضک میکنن رفتی خ حیت انجام بدیم حالا خون پیراهن پوشیدیم حالا پیرا ایشون شما مت شلواراتون که نمیشه روش تیاز بیم پیرا ها بلند چه موقع پیراهن تو بالا میگیم نشستی بولمی که چی؟ هامو جو کیصدی نشسته برای چی برای که وارد ترسندی دن؟ یعنی مسئله کلا ذکر میشه. عادل هم ذکر میکنن آنالوگ ورش. لیکن آنالوگ معمولا صحیح نیست در این مسائل تعریف. معمولا صحیح نیست. تکلیفی در معمولا هم صحبت در این عادله. من بقا من میخوام تر همی مسئله روش دلیل نیست ذکر نمیکنم. که یک مسئله مشهور باشه مثلا یک از مسائل مشهوری که هست باصی که انسان فضای های ادرار بعد از اون ادرارش مثلا ذکرشو مثلا بکشه داخل به البته که اون ادرار یا گاز باقی مونده خارج بشه حالا حکمش که مثلا بکشه اون ذکرشو مثلا به فرد اون که مسائل ها مثلا خیلی اون اصطلاحوشو نمیشه مثلا چه مسائلی که ذکر میشه مسائل فتیه. باید گفته بشه و علما هم ذکر میکنن حدیث از نزد امام در مسندش از حساب نو یه از داد پدرش که میگوی از در سلامی فرمایان ادابار احدکم فلینتر مرات ذکرش رو بکشی نتر کشیدن و همون لفظ خود ممكننه. تون بکنی بله با یکمی فشار یکمی فشار بدی که اگر چیزی توش خارج این نتره. فشار دادن یا کشیدن میشه نتر یک حکم یک لغتی یک کلمه یا گرفت نتر تلیجه جواب به کار میبره حالا حکم این حدیث حدیث مرسله و عیساب نوی از داز مجهوله. این حدیث مرسله و عیساب دو تا این پس داره بس بس حدیث میشه چی؟ زیب میشه سلالا کن؟ خیل حالا ایکن کسی به اثبات موتی و این کار رو بکنه نمیگه سوال بار ده بارم این کارو بکنه که دیگه فردا واسط واسش حالا بعضی ها میگن حالا فقط پوشتن آب چیه روی فردادام چلوار کدا پوشیده اونجایی که مثلا حضرت کسی که ورز موصل مغرمه گوشم گوشه تو واسط واسه میادن که یک قطره دو قطره بچکه که یک آبی هم اونجا هم بپاش هیچ نجاستی با آب باقی نمونده معلومه بس اونایی که واسط واسن این مشکلو دارن هیچ چیزی به دلت راغ نده ازذا حالج انجام دادی. آلا حالا میخوای بکشی، میخوای هرچهک میخوای بکن فقط باید این از اونجا خارج خیلی هم شخصاریک آب هم برید ریون شلوارکی شلواری تا اینکه راحت بشین وری اینو می گمید. که این کارو زیاد تکرار نکنید این کار نکنید تای بکنید که بلند می چون این وسواس کار دستتون میشه میده کم کم به چاره سلاسل بول میشه این شک این دریچه چه دست انسان اراده دست, دست انسان داره که یه مثانی مثالی که دست انسانه بلند یه خود این مثانه واسه میشه وسواس بیاله ریخته نه, نه ریخته این وسواس خود این ع... عصب... عصبی که به خود می استرس اعصاب اعصابه عصبیکه مثانه مرتبط این عصب را ضعیف میکنه اعصابه دیگه عصب یکی ضعیف شد خود بخود این باز میشه، دیگه ازش از خارج میشه سعی بکنید آسیب خودتون مصداق نباشید و فواست نباشید. مجرد که را در دستشویی بیشتر از دوده خشک دیگر دلیفر اگر برای درآوردن طولش ندید یک حس مبارزه دستگیری هست که من جذب نمیکنم چند دادگیر حق داری تو درشیرونی. این بدون مسئله که بحثش میشه که خیلی از تحریم زیاد موندن در داره دارن. درست است چون اونجا جایی است که انسان از ذکر خدا دور است چطور می‌تونی در جایی که جای جن و شیطان و فدانه جایی که فکر خدا نمی‌تونی بکنی اصلا مؤمنی که باعث همیشه زبانش به ذکر خدا باشه و دنیا هم هم در بزنی. ملعوله تو دست این وسایل تلویزیون ملعون ملعون ثم في الذکر الله ما جایی که ذکر خدا داری باشی تو ندی جمهور الان بر همینن که نباید چجوری این مباحثی هستند من الان چون دلیل روش میگم یک بار الله يعمي الوشع می‌کن چون دلیل قرآنی روشی من ذکر نمی‌کنم دیگه آنم با خوش ببره اونجا جایی این ذکر نیست محمد همیشه واظع کرد خدا باشیم خب از جمله مسائلی که هست ما کم و بیش میبینیم ما همین قویون در ورشه‌ی بنده ربوار یک شخصی اومد گفت که خب یک بار های، یک بروشورهای زدن یکی از چیزهایی که آوردن اینه که وقتی که از داشت خارش خارج شد بگه الحمدلله الی اذهب عنی العذاب ادا افانی و, و در روایت در الحم الحمدل الله الذي اما دنی الد و افانی آ بالا عرفات مختلفی که اومده خود من سپارتو شکر میگم که این ضا این ییت نو سر از داف کرد و مرا معافات کرد از این نجاست ها آیا این اثر درست ترینین و و مدررک روش هست یا ینس خیر این اثر ضعیفه و در ندمااج اومده ح شما رای سر یک موقوفش هم ضعیف بازم، سرمسنف منیشه به جلد یک صفحه دوازه اومده. کل این آثاری که اومده، هیچ کدومش درست نیست. هیچ کدومش درست نیست. نه مرسایش، نه موقوفش. خب. میمونه یک مسئله که ما زیاد میشه نیاز داریم. خاتمی وقتی من. ما بعد از اینکه قضه حاجتم انجام دادیم خودمون رو شستیم لا با سنگه یا با آب دستمون دستمون آیا دلیلی برش هست که باید با صابون یا با خاک درکش بدیم و یا بمالیمش و بشوییم یا نه دلیل روش هست یا نی خب بحث الله ما اول کاکش حسابات بکنید تا بریم بحث حساب بحث خاکش یا بحث همون دیوار بعضی والا دلشون نمیشه با دیوار تیمون بکنن یا حالا دلیل فریحه. هست خاصن که دلیل صریح داریم که رسول الله با دیوار تیمون کرده نه دیواری که از جنس زمین باشه گچه سیمان نه، سیمان ما ده شیمعی زیاده، ایک این که خود زمینه دیواری کلا گشه که روشه، رنگ ده باشه، رنگ باشه، که حائله، دستمون به جنس زمینه، جنس زمین، چیزی که از جنس خاک باشه، و جعلت ای الارض مسجدن و طهوره، سنگ باشه، نه، این سنگ، یک معیه روش هست، براق شده، لیکن سنگ ای که از خود زمینه حالا صفت باشه، کرده خواهد داشته باشه، نداشته باشه، مزایی باشه، هرچی که باشه. از جنس زمین، این از جنس زمین نیست، روکش داره، رنگ داره نه. چیزی که رنگ نداره، از جنس زمین باشه، تطهیر و تعمون کردن باشه. و جعلت یه الارض، زمین، مسجد و طهور، پاهره. خب، اصلا و طهور هم چه کار میکردن؟ تعمون کلا در بحث تعمون خواهد من. لیکن در بحث پا باقی مونده اثر و نجافت چنین مجد بخاری حدیثش ماری و مسلم سی و مسلم از میمونه ان النبی صلی الله علیه و سلم من الجنابه فقتل فرجه انجام دادن ثم درک بیهم الحاق سفت دستشو به دیوار کشیدن دستش به دیوار کشیدن اما اثر انجام داری باقی مونده طوشه بعد ثم غسلها فقط بعد ما هو بالدوارشين دستش نشوز شستن ما في في, الاناني في الاناني افرغ بها على و وغسل بشماله ثم ضرب بشماله الارض مخصص كدست تش بعد سنته كجي السنج چپ بشه بعد اون دست چپ به زمین مورد بشه آلا زمین, نی... زمین نیست زمین اون پاک یا یا کااشی چهکار بکنین این صابون استفاده کنید حداقلش از صابون استفاده بوده ودلکهدلکن دلکن شدیدن خب شد هوشستا دلکن شدیدتون مت با اوالات تاختی وجود برای مااضزیره یه خلاص بحث امروزمون بودین چرا مرمموناقاب مینی بحث اینه میکروب و جااست اینا چقدر شر دقییت این جز مصاحی هست که ما باید در بکنیم و کمال همینی شرق رو که چقدر اهمیت داره به پاکی و اتنیدی سبحانه کنه محمد